بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله ودليل الاستعانة قوله تعالى إيا تنعبد وإيا تنسعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسك ومحياي وممواتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ما ديشاب بحثي يا كان عبد ويا كان السعين وكادن بحثي السعانات فهذا الحديث لنا في استعنت فاستعن بالله أي الاستعانات جسي جسي از خداوند کمک وجود بحث کمک جستن از خداوند ما گفتیم یک بابش یک دریک ما شرحش رو نن توضیحش در شر خداوند بمون های استعانت جستن به خودش رو گفته یک قضیه بحث دعا هست که این دعا برای خودش آداب داره مثلا از وضو گرفتن یا رو به قبل نشستن. یا بحث دست به دعا بالا کردن استعانت جستن با انجام دادن اون چیزهایی که مصحبه برای پذیرش اون عبادت که ما در بحث توسل بعد دوستاشاد یادشون باشه که ما در بحث توسل گفتیم در بحث توسل خب خود توسل اصفانه جسنه به خداونده با وسیله های شرعی با اون چیزهایی که در شرع اومده مثلا توسل به اسم خداوند اللهم انت رزاق و فرضو کنی توسل به اسم خداوند یا توسل به صفات خداوند أعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما أجد أو حذر. يعني إنسان تواصل بجوا بقدرة خضران، الشر أم شيء ذكي أزش من ولا؟ داري كشيء. يا بفعل خضران كديشان مساجد اللهم ما صل على محمد وعلى وعليه محمد كما صليت على إبراهيم وعليه إبراهيم. عشان كوسا يبغى صم وفصله. هم تكبر إبراهيم سلوات فرس صادى، إن جهام برسول صلاة فلس سلوات بفرس. إن جت تواصل بفعل خضران، تواصل بحال داري داري حالك ما درش. واقع هستی مهمتر که موسا توسل جست به حالش اینی لما انزلت ایلی مرسیر فقیر من به درگاه فقیرم محتاجم یا توسل به اعمال صالحی که انجام داری موسیٰ نفری که در غار رفتن در غار برسه شد یا توسل به که منتبه خدا در ربنا اینا نامنه فقف لنا در جنوبنا گناهان رو مرمبرش بخاطر اون ایمانی که اوبردی این توسل های مشروع استعانت جستن مشروع که در شرع و انسان میتونه کمک بجوئه یا مثلا به فرض استعانت جستن با دور قد نماز خوندن بعد دعای استخاره کردن چون استخاره خودشم استعانت به خداونده با اون فعل ساعت و اون نیکی که ما انجام میدیم از خداوند میخوایم که در ازای اون اون مشکلمون رو حل بکنه اما بحث امشبمون بحث استعازه هست پناه بردن به خداوند است عوض یعنی پناه بردن نهایت پناه بردن میشه لوذ لود داریم بعد عوذ داریم اینها معانی تقریباً متقاربین به معنای پناه بردن شخصی غریبانیده یک کسی بشه که او را نجات بده مثلا بفرض کسی که در دریا میخواد غرق بشه پناه میبره به چوبی چیزی که خودشو نجات بده این پناه بردن و این پناه بردن لازمه اعتقاد قلبی هم هست یعنی انسان اعتقاد داشته باشه در طرف مقابل که او را میتونه نجات بده میتونه کمکش بکنه این بحث خیلی بحث مهمیه چون حالا بحثش میاد در بحث انواع استقاطه میاد بحثش استقاطه با همچون استعاده هر دوتا مثل همه اینکه اونجا پناه بردن به خداوند در مشکلاته به عنوان اینکه اینجا محلق ثابت بکنه که دلیل میاد ترموده خداوند کل عوض و رب و قول عوض و رب ناصره میاره برای چی؟ برای اینکه اینجا در این خطاب خداوند متعال به رسول ص داره ام میکنه که چه رو انجام بده خداوند اون چیزی که بهش ام میکنه آیا اون چیز عبادت محسوب میشه نمیشه امر خداوند به انجام یک چیز عبادت عبادت نیست امتثال و انجام دادن دستورات خداوند عبادت یا نه خداوند گفت نماز بکنید خداوند گفت روزه بگیرید عبادت یا نه عبادت اینجا هم قل اعوذو بگویید محمد اعوذ برب الفلا قل اعوذ برب الناس اینجا داره خطاب میکنه برای خدا صلی الله علیه و سلم که اینچین استعاده را بکنه و این استعاده این پناه بردن مطلق مطلقا انسان پناه ببره به خداوند از شر مخلوقات درست نیست که اینجا انسان به خداوند به بغ... کسی جز خداوند پناه ببره از کسی غیر از خداوند کمک بخواد نجات بخواد که او را نجات بده آرا اینجا قل اعوذ و بی رب این مردم یا انسان بگه اعوذ بالله اللهی من الشیطان الرجیم پناه ببره به اسم خداوند الله خودش یا پناه ببره به صفت خداوند به بعد توسل پناه ببره انسان متوسل بشه به صفات خداوند همه اینا جایزه مثل اعوذ بکلمات الله تامت من شر ما خلق پناه میبرن کلمات الله تامت چی قرآن خدا پناه میبرن به کلمات تامت از شر اون چیزی که خداوند خلقات کرده کلمات خداوند چیه کلام الله؟ این یک از ادلله هست بر اینکه کلام خداوند مخلوق نیست بلکه صفتی از صفت خالقه کلام خدا صفتی از صفات خالقه انسان میدونه به کلام خداوند فناه ببری و این درسته به طبقه همین حدیث عاویده به کلمات الله التامات من شر مقاله ما مثال زیاد داریم از ظلم مثال ها در بحث توسول و استعاده به صفات خداوند همون دعای رقیه هست اگر کسی از درد نالهی رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند دستش رو در درد بذاره بعد بسم الله بسم الله بسم الله اعوذ بعزه الله و قدرته من شر ما اجد اینجا پناه بردن به عزت خداوند و قدرتشه از, از, از درد اون چیزی که میناله از پناه میبریم از درد به خداوند تا پناه میبریم اما استعاده به غیر خداوند در اون چیزی که بنده دستش بهش نمی رسه نمی تونه پناه بده نمی تونه کمک بکنه این استعاق شکیه یعنی انسان بیاد از مرده طلب کمک بکنه که به دادش برسه به فریادش برسه کمکش بکنه پناهش بده <تصفيق> شرک اکبره مخرج از مله هست و انهو کان رجال من الانسی یعودون بر رجال من الجن فزادوهم رهقا این بحث عاده هست که انسان مثلا بالفعل فرق این دلیل و مفسری میگن برای إن انسان اگر از جن کوچک است و همچنین مثلا بالفعل مثلاً بال اون صاحب از جن کوچک میکلبه حکمش چیه حکمش شرکه شرک اكبر کفر اكبر مقتدر همیش رسول الله صلی الله عليه وسلم حد صاحب سیف قائل نتوان زده بشی مرتد اینما نحن فتنه فلا تكفر اینما نحن فتنه هاروت وماروت ماروت قیا تن هستی ما فتنهایی کفر نیار بحث یادگیری صحر و ارتباط با جنیان کفر اکبره حال انسان اگر از جن بخواهد به شرک اکبر شده چون در دعا داره شریک خدا قرار میده خدا میخواد از خودش بتو و قال رب بکن استجب از تجب لكم. از خودش میخواد که ما ازش بتلبیم به خودش پناه ببریم انسان میره پناه ببره به چی؟ به اون جنی که خودتش و تمانش نمیده و شاید هم تمانش بدسته بری با و حیدها و مکرها و بحثش اینجا نیست در بحث سحرش الله بعد بحث خواهد ما الان اگر قرار است و جادوگر متوسل بشه به اون اشخاصی که نمیبینه از جنیان بتاره شرک اکبر بشه حال اگر انسان از مرده بخواهد کمک بخواهد طرف میشیه در اون چیزی که مرده نمیتونه جن که میشنانه میبینه ولی با این وجود حرام درستی است و شرک اولاد اون مرده که نمیشنابه خداوند نفس شنیدن ازش میکنه خداوند در قرآن چندین بار در قرآن خطاب رسول الله صلی الله علیه و salam میفرماید و ما انت بمسمع من فی القبور و ما انت بمسمع من فی القبور. تو نمیتونی صدا به مرده بشنوانی یعنی مرده نمیتونه صدا تو بشنوه. بشنوه. واضحه در این که مرده نمیشنوه. حال اگر ما صفت شنیدن بهش بدیم چی میشه؟ میشه شریک قرار دادن اون مرده در خداوند با خداوند در صف سن. خداوند مطلقاً میشنوه. اینجا این مرده در حال زندگانیش میشینی در حال مردگیش هم میشنوه خیر ها شو وكلا نس نفس القران و ما انت بمسمع ما في و وانك لا تسمع الموت. نبی به مردگان صدا خود و بشه ولی فرموده سوره اعراف مولانا در سوره اعراف خیلی تعریف دهنده اینه خداوند اونجا میگوید ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم اونها که صدا میزنید بندگانی مثل شما هستن ولی چی ولی یک تفاوت با شما دارن شفاهاتون در چیه بعد بعد از اینکه میگه دروف علی اسجیوا لکم بعد از اون آیه بعد میگه اله‌م ارجون یمشونا بها پادارم راه برن فرق ته هوس با شما پادارم زیر خاطر راه برن خیر ام لهم ایدن یبتشونا بها دسترا نفس زیر خاطر بیان بیرون خیر ام لهم اعنون یبصونا بها چشمرا زیر خاطر بینن خیر ام لهم اذنون یسمعونا بها دسترا بشننن خیر حال اگر نمیشنواد نمیبینه نمیتوند راه بره نمیتونه خودش رو نجات بده تو تو تو پناه میبری بهش حکم پناه بردن بهش چیه شرک اکبر بس استعانه پناه بردن پناه بردن به اون کسی که قادر نیست مرده هست شرک اکبره صرف دعا است وقتی که دعا رو مصادف کردیم وقتی که گفتیم از الدعاء هو العباده دعاء عبادت این دعا رو صرفش بکنیم از خدا به غیر خدا شفیع قرار بدیم واسطه قرار بدیم مرده یا غیره اگر واسطه قرار بدیم اون مرده حکمش چی میشه؟ حکمش میشه حکم همون مشرکی دی که میگفت ما ما نعبدهم الا ليقربونا الاله ذوالفا. ما اون اونا نه غیر از این مدر اینکه ما رو به خدا نزدیک بکنن. پرستششون چه چیزی بود؟ صدا زدن بت‌ها، فریاد زدن بودها خدا را قبول داشتن. كل من ما في السماوات والارض ليقولن الله الله را قبول داشته. ولی مشکلشون چی بود؟ هؤلاء شفاعنا، اینا شفیع ما هستن. شفاعتمون میکنن. ما رو به خدا نزدیک میکنن. به خاطر همین سبحان الله یکی از جاهای تأسفی که ما درش واقع هستیم امت اسلام هایی که قلب کردن در رسول الله صلی الله علیه و سلام و, و صفات خداوندی را بهش دادن از شنیدن مطلق و دیدن مطلق و گفتن که حی حاضر در جلسات ما هم شرکت میکنه، از اسفات خالق بهش دادن تا جایی که غیر بحث شنیدن و حضورش در جلسات رسولات اینجا جلسه مولودی فلانجا بندر لنگه است فلانه هر جا که مولودی برگذار میشه میگه رسول حی حاضر میاد شرکت میکنه ببرسه رسول چند تا جسد داشته چند تا روح داشته یا ارواح متعدده داشته در بندر در الان اگر مولودی اینجا برگذار بشه اینجا هست اونجا هست اصلا این چی این چی بازی هست چطوره که رسول صلی الله علیه و آله حی حاضر در حدلت حد مولودی شرکت میکنه و محلقی قیام مییسم به احترامش این الله و این انبهه دیوازی هست الا گفتم صفات خدایی که بهش میدن از حی حاضر بودن از اینکه میشنا و میبینه به طور مطلق هرچه که هر رسول مثلا مقیدش کرده میگه در صلوات رو بر من سلام رو بر من فرست فرشته موکلت که سلام شما درود شما رو بر من برسونه همین تشریک همین شراکت مخلوق با خداوند در بعض از منجر شده که خیلی ها پنه به بر رسول الله علیه و سلم در در مصیبت‌ها، ها در مشکلات پناه ببرن. مثلا ما گفتیم لود داریم و داریم لود نهایت پناه خب صاحب قصیده برده ای که هست در کتاب برزنجی هست سیده ها می مثلا صاحب برده چه میگه میگه من لی و بهی سواک اند حادث العمم تو آخرش ای رسول الله صلی الله علیه و آله. جز تو کی دارم که بهش پناه ببرم خدا کجا رد جز تو کی دارم که پناه ببرم؟ نیست؟ این گفته شرک نیست شرک اکبره. ولی بعضی نه این من با بجون من مشخصه که اینجا وقتی که میگه من لی الود کی دارم سوا یعنی ادات استفاده من با من لی سوا و غیر مشخصه که داره رسول الله را تخصیص میده با با همین سوا تخصیص میده به اینکه دسته یکی این هست دیگه ندارم بهش ببرم. بس استعاذ و پناه بردن در اون جایی که مخلوق نمیتونه کاری انجام بده مرده هست حکم شرک اکبره اما اون چیزی که, اون چیزی که مردم میتونن اون چیزی که از دست مردم بر میاد اون مشکلی نیست که انسان پناه ببره به شمت رسوله صلی الله علیه و سن در فتنهای روز قیامت میفرمایان من تشبغف لها تستشرفه فمن وجد ملجع او معاذن فلیعذ بهی به روزی که روزی که ها میاد دنبال راه نجات،, راه نجات باشید یک پناهگاه دیدید بهش پناه ببرید فرار بکنید از دست فتنه آرا میخواد دجال باشه فرار بکنید از دجال نهی طرف دجال راستی طرف دجال فتنه شما در بر میگیره اینجا بحث چیه فلیعذ بهی. یعنی پناه ببره به اون پناه ببره به امر دنیوی که خدا گذاشته مثلا شما دارید غرق میشید میگید نه خدا بخواد مرا نجات میده دیگه نره طرف مثلا بهش خوبی که اون این خلاف اصل، خلاف دکیلت، خلاف خرده، چون خداوند های دیگر را گذاشته برای چی؟ برای نجات، وسیله قرار داده. نه اینکه ما بذاتش متوسل بشیم، بلکه به چی؟ به اینکه ای یک وسیله هست، خداوند قرار داده و ما به خاطر همین دنبال نجات هستیم. اینجا مباحه، اون چیزی که میتونه ما را نجات بده. اما اینت انسان مخلوقی هست، زنده هست، ولی در توانش نیست. این ای یک حالت دیگه هست. مثلا مخلوقی هست شاید بتونه ما را نجات بده ولی خب احتمالش خیلی کمه و نمیتونه بچه هست پسادارن شما غرق میشید بچه شما مثلا دو ساله دو ساله هست این احتمال عقی اصلا نمیده که بچه دستش بلند بکنه توی قایق شما دارید غرق میشید شما اد توی آب بچهتون ب دست من میگن بیام بالا. میشه این قضیه رخ میده این نمیشه. این بیهود بازی هست. شرک نیست کفل نیست ولی خلاف لله خلاف خره. این کار دیوانه انجام میده نه انسان عاقل و خردمند این خلاف خرد خب و دلیل استغاثه قوله تعالی اذ تستغیثون ربكم فاستجاب لكم استغاثه بحث نجات خواستنه اونجا پناهه من پناه بردم به خداوند از شر اشر از شر اون چیزی که هست از اون بدیهایی که خدا گذاشته از اصلا بخواد مرض باشه درد باشه سردرد باشه من پناه میبرم به خداوند بیا پناه مبره انسان از جن ولی اینجا استقافه از غود درخواست نجاته. خصوصا در مشکلات و مسیبت ها. که انسان درخواست نجات بکنه. انسان وقتی که در کشتی میخواد غرق بشه اونجا چه کار میکنه؟ اونجا دیگه دست به دعا برمیداره. اونجا فقط خدا را صدا میزنه. که خدایا من را نجات بده. پروردگاه را من را نجات بده. همون کاری که مشرکی میکردن. ولی وقتی که نجات میافتن، دوباره میافتن دوبار اذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم خداوند اجابت کرد اجابت در ازای چی اومد در, در ازای استغاثه این کمک خواستن این کمک خواستن شو دعا بود یا نبود وقال ربكم ادعوني استجب درسته؟ قال ربكم ادعوني استجب, استجب دعا بکنی استجابت میکنم استجابت در مقابل پذیرش طلب درخواست الان میخواد دعا باشه برای خی... خیر خوبی به میخواد پناه بردن باشه میخواد درخواست نجات باشه وقتی که شما دعا میکنی بعد استجابت میشه اینجا چون استعاده و استقاطه هر دوتاشون در بند دعایی که اول از دعا و حوال وارد میشه شکی درش نیست و خاطر همین اینجا خدا اینجا میاره از تستقیتون استس... استس... استس... و ابتون فستجاب اینجا شعل نوزیل آیه چیه؟ بحث جنگ بدر وقتی که مسلمانان در شدت و کربت واقع شدند وقتی که دلتنگ شدند اینکه عددشون کم مشکین عددشون زیاده خداوند امدادشون کرد بی ب... یاری اونها رو یاری کرد با فرشتگان با ملائکاش اینجا داره اونها رو مدح ستایش میکنه خداوند آیا خداوند اعلان رضایت و مدح ستایش میکنه در مقابل امر مباح خیر اینها یک کار درستی انجام دادن و اونم پناه بردن به خدا که خداوند داره اینجا مدحشون میکنه ستایششون میکنه اون وقتی که پناه بردن به خدا و گفتن پروردگار را جستو کسی نیست که ما را نجات بده پروردگار را ما را نجات بده عبادت عبادت نیست؟ عبادت دعاست از خدا خواستن و خداوندن استجابت کرد انسان شرمنده میشه خدا میگه من استجابت میکنم و این هم استجابت هایی که کردم ولی انسان میاد به خدا میگه من دعا کردم که دعام استجابت شد الاشیخ تا یک کاری بکن تو برای ما دعا بکن سبحان الله همون شبههی که مشرکین داشتن چی بود شبهشون؟ که الان ما انسان های ناپاکیم ما نجسیم شما برای ما دعا بکنید همین شبهه ها کم کم کم کم اونها را در شرک اکبر انداخت همونطور که در راستان پیش اون علما اون اشخاص بزرگانی که داشتن اول عکسشون رو کشیدن تمثالشون مجسمهشون بعد کم کم کم واسطه قرار دادن تا این که را رو پرستینن از اونا خواستن و شفیع قرارشون دادن اینجا بود که نوصر میشه برای نهی از این شرک پس اینجا به خاطر اینکه خداوند مدح تایش میکنه و اعلان رضایت میکنه از فعل مؤمنین وقتی که به خدا پناه بردن استغاثه میشه چی میشه عبادت هرچند که اگر این دلیل خاص ما نداشتیم چون در زیر مکنوعی دعا وارد میشد این استغاثه خود به خود چیه؟ خود به خود عبادت میبود بر اساس اینکه که دعا هست در خاص دعا هست استقافه همونطور که استعاده داشتیم به اموات استقافه هم همینطور استغاثه به اموات به مردگان اون چیزی جایی که نمیتونن کاری انجام بدن اونم با در شرک اکبره اما يجيب المضطر اذا دعاه اما يجيب جهاز هذاك استقرار وقت بشيء در اونجايي بشي كه مي نجات ميخواد اون وقتي كه غرق ميشه وقتي كه نجات ميخواد تي نجاتش ميده جوش خداون و يكشف السوء داره و يجعلكم خلفاء الأرض مع الله ايا الهي پروردگاري دوست هست اون مصیبت در اون حالت استرار کسی هست که شما را پناه بده نجات بده کسی نیست جز خدا الله هم مع الله قلیلا معصددکرون. یعنی اونجا اگر جز خدا را صدا زدید شما گفتید الهی و با خدا حی نیست الهی با خدا هست. چون اینجا که آیا ش میشه اما یجبب المطائذا دعا اون وقتی که مستر دعا می طلبه مستر دست به دعا بر می داره برای چی دفع مصیبت اونجا فقط خدا را فریاد میزنه اونجا فقط خدا را صدا میزنه و وقتی که در کشتی میخواد غرق بشه آیا خدواند اینجا میگه آیا, خدای با... آیا, آیا کسی مثل خدا هست ایله هم الله شریک خدا داره که مثل صفات خدا داشته باشه ارحم و باشه لطیف باشه رؤوف باشه سمیع باشه بسیر باشه که شما را نجات بده ایله هم الله قلیلا ما تدکرون کم بیاد میارید چرا متذکر نمیشید؟ چرا یادآور نمیشید؟ چرا به این فکر نمیشید که خداوند ارحمن رحیمینه؟ نه اون مرده ای که زیر خاکه. خداوند و غیوبه. خدا میدونه به مصلحتت هست یا نیست. که این چیز را بهت بده یا نده. خدا از آیان در با خبره نه اون مرده ای که زیر خاک خوابیده. پس اینجا اگر اون شخص بیاد این چنین کاری انجام بده، بخواهد از مرده ای که او نجات بده، تو چار شرک اکبر شده. با این کارش گفته اعلههم مع الله الهی با خدا هست اما استغاثه انواع دیگرش استغاثه به مرده ما در خود قرآن داریم مثلا بعضی میگن چطوره که مثلا به شما در ماشین ملاق خوردید مثلا افتادید میگه فلانی بیاد نجاتم بده یا توی کشتی افتادی از کشتی افتادی پرسید میگید فلانی نجاتم بده دستمو بگیر چرا شما نمیگید اینجا کفره چرا نمیگید اینجا شرک اکبر چون ما میگیم برای اینقدر اونجایی که از زنده قدرتش میاد خدا وسیله قرارش داده خداوند ازمون خواسته که ما هم همونطور که در بحث دوا داشتیم یا عباد الله تداووا از ما خواسته که تداوی بکنیم با دارو دارو قرار داده وسیله است و این توکل بر خداونده نه توکل, توکل عدم استفاده از اسباب عدم اینکه سبب را بگیریم سبب را نگیریم این میشه توکل اما توکل اینه که سبب را بگیریم اینجا از کمال توکل اینه که انسان در جایی که مخلوق میتونه بهش بنا ببره، خود خدا را گذاشته. باید ما چاقو رو بزنیم که دوش رو ببوره. کمک بکنیم از چاقو برای بریدن. وسیله استی خدا قرار داده. فصقاته الذی مشیعته علی الذی من عدوه. این صقاتش جای انکاری هم نیست. کسی بیاد کمک بخواد. همونطور گفتیم بحث دارو و هم یک بحثیه. بحث نمیدونم هفتونه فرم اجب خوردن هم بحثیه. انسان ا با توجه به این اسباب میاد این اسباب را انجام میده تا این که مشکلش برطرف بشه چون خداوند این ها را قرار داده اما اون چیزی که وسیله نیست وسیله قرار بدیم اون مرده حالا شبه چیه بعضی‌ها شبه این داره خداوند گفتن بل احیاون اون تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات نجکتونهم مردن احیا هستن بل احیا هستن کجا احیاون عند ربهم پیش بر, بر اگر اونجا در سوره بقره نیومده پیش خداون دستور آل عمران اومده که اینها زنده پیش پروردگان چطور پیش پروردگار حدیث این آیه رو مشخص ارواح ارواح ارواح, ارواح شهدا در اجواف طیر یعلق من شجر الجنه ارواح شهدا در بهش روی شاخه های بهشتی از میوه های بهشتی میخورند از درون پرنده پرندهی مسخر اونها هست که بقران مؤمن خودشون مثل پرنده ارواح مؤمنین که یعلق من شجر الجنه اونا اونا زنده, هم. اونا زنده, هم. زنده هم؟ کجا زنده ان حدیث میگه کجا ان در بهشت خداوند ارواحشون اونجا هست از های بهشتی دارن میخورد پس اینجا وقتی خداوند میگه که حی هستن زنده هستن منظور مطلق زندگانی نیست که همیشه با همه جا زنده باشن بلکه پیش پروردگارشون هستن نه اینجا به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلام وقتی کسی میمیره از دنیا می‌رود روحش که می روید در دنیا برزخی برزخیان از آبا و اجداد اون شخص می پرسن. ای فلانی فلانی ازدواج کرد یا نکرد چه کار می چه کار نمی اگر اون کسانی که در برزخن می آیا نیازی بود که این کسی که تازه مرده ازش سوال بگیرن خیلی لازم نبود که سوال بپرسن پس این احادیث اگر کنار هم دیگه بذاریم جمبندیش میشه. اینه که مرزگان متلع بر احوال ما نیستن آگاه نیستن برایشون این دنیای ما آشکار نیست واضح نیست اونها در دنیای برزخی به سر میبرن اینم بحث استغاثه هم مثل بحث قبلی در بحث استعاده, است... است... است... استعاده بحث این که من پناه بجویم به اون کسی که قادر نیست پناه بردن یا نجات خواست اینم بازم مثل مسئله قلبی کسی که قادر نیست بچگی چه انسان ازش پناه به نجات به کار نادرستی و خلاف عقل و بصیرت این خلاصه درس امشب ان شاء الله موفق شو شفای بعد تایم خون و دعوان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی اهل محمد